امیر المؤمنین علی علیه السلام در آخرین وسایات آخرین لحظات عمر عمره در بستر شهادت است چشم به آینده دارد استبداد بنی عمیه ره میبیند استبداد معاویه و احباد معاویه و عمدی ها عباسی ها و همین پست قصد سر هم دیگر و ملاحظه میکنید آخرین وسایات به مسلمان ها و اصحاب متوجه همین حقیقته که یک مردم جارای مسئولیت نسبت به یک دیگر نسبت به هر گروهی نسبت به گروه دیگر هر فردی نسبت به فرد دیگر تعاون تعارف همکاری کمک خیر اندیشی برای چی یہ جیسا داشت عامل مومنین توقع داشتن که در اواخر زندگانی و سایات متوجه و تقوی حارسایی اعراض از دنیا باشد ولی ما می‌دونیم اینی یعنی همه مسائلی که مطرح می برای پیوستگی و همبستگی مسلمانه ها و علی یعنی خلاصه اندیشه ها تجربیات، اون که از مجموع دین علی دریافته به طور خلاصه به دیدران، به آیندگان، به اولادش، به خاندانش به مسلمانها میخواهد توسیه کنید مردم معمولی یه عمری زحمت میکشند کوشش میکنند، تلاش میکنند، مالی به دست میارن اواخر عمر وقتی که متوجه میشوند که مال میمانه و اینها ها میروند خودش میرود دستش کسا میشود شروع میکنه و وثیتش هست به وقت میکنه وثیت به خیرات میکند اولادش اونی که بیشتر دوست داره برای او بیشتر وثیت میکنه آمه مردم میکنه بزرگان تجربیاتی که دارن به مردم تنکیه میکنن وثیتهای سیاسی شخصیت شخصیتهای سیاسی و اواخر زندگی امیرالمؤمنین بر همین است همبستگی مسلمان ها و پیوستگی اینها یک قسمتی از وسایع آخر زندگی امیرالمؤمنین المؤمنین در جلسه قبل برای شما عرض کردن حالا از زبان من نشنوید. علی تحسیبه ببندی، دردید در به کوفه زمان رتری کنید در نوردی این شخصیت بزرگ این مرد عالم این به جان این مرد بینظیر عالم آلم این عدل مجسم این حجت بزرگ خدا بر مردم در بستر افتاده اثر زهر سمسی کاریو که انگوزت ها زبان به شخی می‌گردد و دارد وسیجت می‌کند او به که ما فتر الله و انلا تبقی از دنیا و این بغت ما اول خطاب به دو امامی است که باید رهبری آینده رو به عهده بگیرم به تو ای حسن به تو ای حسن پنکیه می دنیا دنیا را هدف قرار نداری گفت دنیا خود مثل شما خواهد آمد این دید قرآن است این دید اسلام است که دنیا باشد ولی هدف نباشد دنیا مثل سایه انسان است. اگر به طرف سایه درگشتی هر بدوی که به سایه برسی نخواهی به طرف نور درگرد سایه دنبال دنیا به طرف حق درگرد دنیا هم داری فلا تبغیر از دنیا و این بغت کما فلا تأسفا فلا شیء منها رو عنکما انت از دنیا رفت از دسته ننشین و تأسف او به فعلا بدی بدیم چه میخواهی و چه داری و قولا بالحق و اعملا سخن سخند حق بگیم و برای پاداش الهی عمل کنید و قولا لظالم خسمن ولل مظلومه اونا حجا ظالمی رو دیدی دستش رو خسم ظالم باشه خسم آشی پذیر ظالم باشید و کمککار و اون مظلومان باشه این سیک و ما و جمیع و و اهلی و من حجا ظالمی دیدی جستش تو کساخ خسم ظالم باشه شسم آشکی پذیر ظالم باشید و کمککار و آن مظلومان باشید اوسیک و ما و جمیع و و اهلی و من بلغه کتابی ستابی به باز به شما دو فرجند هم به اهددار امامت وسیجت میکنم و همه خاندان و به هر کسی که این نوشته و این وسیتنامه من برسد به تقوا و نظم امرکم امورتون را منتظم کنید در تمام کارها برنامه داشته باشید ساعات کارتی ساعات فراغتتون ساعات عبادت ساعات معاشرت ساعات درف و فهم دینتون فعسد زندگی رو تنظیم کنید این انسان مترفید نه انسانی که از بلند میشه راه میافته مثل اکثر ماها خب آقا امروز روز میخوای کار کنید خود حالا راه افتادید دلاخله به یه کاری میرسید یه جایی میرید بعدم وسط را رفیقش رفیق میرسد میرسید از میگه یک خورن برگست این خواهر خانه منجل منزل که برنامه نداره در زندگی. برنامه شش اندیشی که در زندگیش همونطوری طوری که اسلام میگوید از ابتدای بلوغ برنامه میذارن جنوب ساعات عبادت روابط، زندگی زناشویی حق زن بر مرد حق مرد بر زن نظم خانواده تا نظم کشور هر کسی در جای خود گذاشتن ناشایست که به جای شایسته نجزستن و حرف ما شیرم از اول عیلی بودیم و علی شایسته شایسته کردیم حالا چرا ما خودمون عمل میکنیم؟ کنیم ما اگر واقعا مسلمان باشیم کسی که متصدیه یه پوستیش یک کاری که وزیسه اگر متوجه بشود که فرق دیگری بهتر این کار رو پیش میبرد او باید رو خالی کنه بیاد او رو به نسانه سری او تو بهتر کار انجام بیا این نظم اموره ست بیدنه به سندلی و پوست این اختلال نظمه یعنی ناشایست و جاری شایسته نسستن. هر فردی برای هر کاری که ساخته شده باید به اون کار او رو بماد این تسته، این حدره حدر همون که بارها گفتم تنها تقسیم ثروت و حولیدات نیست که حق هر مولدیره به خودش داده هر انسانی هر فردی شایسته ی هر کاری از در وسط اجتماع، بگردید، پیدا کنید آقا این کار تو بهتر انجام میده من رفتم کنار تو بیا جای من تو بهتر از من میتوانی دین را بیان کنی من حق ندارم خودم ره یگان مبلغ و بوینده دین بدانم میدان برای همه باید باز باشید این نظم امره نظم امر از فرق برنامه زندگی از صبح تا زه تا مغرب اشا تا وقت خفتن همه برنامه باید بسنید و برنامه خانواده تا برنامه ایسایستان اینیست که علی بعد از تقرام میگوید من به شما توصیه می کنم امورتون رو منظم کنم و صلاح ضعفه بلی تو این از این بهتر عالی‌تر دستور هست اگر اختلافی در میگیره در خانواده همسایه با همسایه در این دهکده در این واحد سنعکی خودتون بنیسید به این خودتون اصلاح کنید هروند وایو سید به قلمکاری بعدم پرونده و بعدم به و بعدم اگر یه حقی داری باید چندین مقابل خرج کنی پول وسیله اینا آخر به حقت نریقه خوده و سینم بازی بمونه از صلاح ذات بینکم چیزی خاطر بلن خودتون چیزی انصاف کنید دیگه احتیاج به داد دستری نداری هر فردی مسئولیدی، مسئولیتی که در جامعه اسلامی باید ما درک کنید مسئول مسئولانا رئیته، کم را و کم مسئولید هر فردی، خودش باید سیاش بدانه و هر فردی نسبت به دیگران مسئولیت و صلاح جاک بینکم کم امین سمع کن. من من علی شنیدم از جد شما رسول خدا صلی الله علیه و آله یقون یقون صلاح ذات البیش افضل من آمت صلاح و من خودم از رسول خدا شنیدم که فرمود اصلاح بین برادران دینی برادران مسلمان افضل است از همه نمازها و روزها اقراق گویی ای پایه زندگی <تصفح> الله الله فی خدا رو در نظر داشته باشید درباره یتیمها الا کوبوا افواههم مبادا دهان دهانهای اینها از گرسنگی بسته شود ولا پر او به حضرت کم در مقابل چشم شما یتیمها زایع و فاسد نشوند هر انسان ساخته محبت است هر فردی هرقدر محبت دارد نسبت به دیگران عواطف انسانی دارد یک قسمت از این عواطف محصول به انسانی هر فردی یک قسمت مهم محصول سرپرستی پدر و مادر است همون وقتی که مادر شیر به کام تیف میگذارد عاطفه در او ایجاد سید حت برسد به سرپرستی پدر نوازش پدر، این انسانی دارای شرافت نب حواصف انسانی به همه جامعه خوشید از این دریچه به همه اجتماع می نگرن. از دریچه عاطفه رحمت خیلی اما یه فردی یه کفری که بی پدر و مادر مان عواصف پدر و مادر ندید اگر جامعه در او ایجاد عاطفه نکند و سرپرستی نکند به تدریف تبدیل می شود این انسان این وگزانه پر از خیره یه فرد انسان از عقده و یا نسبت به دیگران این زایه چنینی برای جامعه اغلب بیرحم ها حتی اون کسانی که, که مسلط شدن بر مردم می بیدیم بچه های بی پدر و مادر بودن که احواتف پدر و مادر نداشتن و جامعه هم از اونها سرپرستی نکرد، ایجاد آسایش و خیر نکرد، مبذول. اونایی که خیال میکنن نظام اجتماعی عالی این است که مادر بچش را همین که به دنیا آورد ببرد در میان هر ورش راه بگذارد و بعد خودش دنبال کارش برود یکی از جنایتهای بزرگ به عالم انسانیت و عواطف انسانی انسان پروریده انسان هر پروریدهٔ رحمت پروریدهٔ خیر با همین چشم رحمت باید به عالم نگاه بکنی انسانی که رحمت و خیر در نیافته و پرورش نیافته به جامعه بدید به افراد بدید همون عرب که قرآن فرمید امومن از این طبقه است و بعدم به آلم بدید به جهان بدید این جهان که سراپا نسیم رحمت الهی به همه آلم میبذه هر رحمان و علال تمام عالم رو خشه بد مشبه و تاریک میبینم این است که این همه آیات قرآن نسبت به ایتام توصیه کند علی هم در آخر عمر قرار می یابد بلا و زجاء و فحضرتو. حاج دارید اینا زاییده اینا عنصر اجتماع اگر زاییده شدن اجتماعی رو خاطر الله الله فی ذیرانکم و انه وصیه نبیکم ما زال یوصی بهم حتی زنن نا او و یوبره تو ببینیدی روابط اجتماع ها نزد عمور و همکاری و فعابان و همسایه هر همسایه مسئول و همسایه دیگر ها. در شهری زندگی می که چالها در یک کلکه و در یک محل هستیم نمیدونیم همسایه ما چی اگر برای او گرفتاری فاجعه پیش. مریضی و حادثه این دیگر خبر نداره این شهر فراکنده این شهر انسان ها نیست این شهر اسلام نیست همسایه اگر هر کسی مذکوله همسایه خودش باشه و به عکل همه یه مجتمعی در یک شهری به درد یکدیگر دیگر میرسن من نمیدونم این همسایم این شهر یا سیر آیا توانسته مریزش به بیمارستان برساند یا نه توانید؟ انقدر پیاندر وسیدیت کرد نسبت به همسایه که ما خیال کردیم همسایه از ما عرض میبرد فسآل کردیم یا رسول الله همسایه هم مراکی برد برمید ولی نباید از بیخبر با سیده از همسایه الله الله لایت بغن نبل عمل بهی غیروفه خدا را در نظر داشته کنید نکنید قرآن قرآنه چه کنید؟ در فقط سر قبر انبات بخوانید در مجالس فاتحه بخانید همینطور قرائت کنید و برید عمل عمل به قرآن داروی شفا و بخش برای امسان ها فنون از ظلمن القرآن ما هبه شفاون و رحمتون للعالم محتوایی دارد اگر شما عمل نکردید دیگران عمل میکنند و شما زیر دست کنید لایست به غنب بهی خیر و خوب. این مرضی که از اسلام به اروپا رفت اروپایی که مستقرق در ظلمت و وحشت و ظلم و وحشیگری و استبداد بود دسم باز کردن محتوای قرآن گرفت آزادی انقلاب فرانسه قدرت پیدا کردن افکار جلو رفت صنعتشون جلو رفت بعد بر ما مسلت شدند روز علی میگوید مواظب باشید که عمل به قرآن به دست قیل مسلمین نیفتد و این یک قدرتی وقتی به دست اونها دفتاد همه قدرت ها به طرف شما برمیگرده شما زیر دست خالی شد الله الله فی القرآن لا به فی العمل بهی غیر الله الله فی السلام فا عمود و کف نماز نشکنید این خیمه دی این بنای دی ستون از نماز روابط انسان ها از بین رفتن امتیاز ها تعامل با یکدیگر آشنا شدن شناختن اقامه می نه تنها نماز خواندن الله الله خی بیت رب بسن خانه خدا رو خالی نگذارید خانه رو از مسجد الحرام گرفته تا هر مسجدی قدرت شما قدرت مسجد است صفه مسجد است صفه خدا است صفه توحید است صفه رحمت است صفه امسانیت است مثل همین صفی ای که همه یک دل همه یک گوش یک چکل که در این سفی در دنیا چه هیچ چند سفی در دنیا نیست در نماز جمعه گذشته ما نمایند‌های کوبا آمدند بعد که با ما ملاقات کردند مبهوت بودند ولی نعمتی که ما داریم قدر نمی‌دانی این چنین مردم روزگار زیر اهتزاز، ساکت، آرام، همه توجه به خدا همه دلها به هم مرتبه این لحدت دنیا رو به اجاب می آورد. الله الله سیبه ترب بکن خانه یه سروردگارتی پروردگار شما پرورنده شما یعنی کعبه و هر مسجدی که در هر جای دنیا شعاریست از کعبه که باید دائما مسلمان ها در شدان روز در هفته در نماز جماعت جمعه حد دائما تجدید حیات کنند یعنی در این دنیایی که سراتا تناظه و تکالب و تذاب در و بیان روی خودشون رو در معرض هوای توحید قرار بدهند و تنفس کنند با این نفس آزاد توحیدی و در این سطر عالی آسمانی به مرحله زندگی برگردند هر جا قضیت الصلاح همتر شریف با این روح الهی با این روح محبت با این روح توحید با این روح خداپرستی به بازار برگردند دیگه اینکه جامعه کلستر هم تی کلا سرم دیگه نمی‌شدن گران فروشی نمی کنن. میداند معمور مسجداس یعنی معمور خدا نه معمور پول و سرمایه داری الله الله فی بیت ربكم. فلا تخلو خالی نگذارید این خانه را اگر خ خالی گذاشتی فانه ان فرش لم تنادر دیگه دنیا به شما اعتنایی نمیکنی اعتنایی که دنیا به شما میکنه از همین سف مسجد از همین روحیه مسجد انقلاب ما از مسجد شروع شده و باید در مسجد ادامه پیدا کنه من متأسفم که عدهای از فقهای ما بزرگان ما مردان باتقرایی که در زندان و بیرون زندان با اینها معاشر بودند اینها میدانم که تحمیل شده ناچارند مسئولا موذفاند که به کارهای دیگه میرسند مسجدها کم از رانت افتادهاس و خود اینها میل این مأموریتها و این کارها و مسئولیتها و کمیتهها رها را کنند به مسجد برگردند امیدواریم روزی پیش است که این متفکرین اسلامی ما و این مسئولین و متعدین علمای ما به مسجد برگردن ما امروز احتیاج به صفت داریم بیش از همه احتیاج به روشنگری جوانهای ما داریم که اینقلاب ما اینقلاب اسلامی اسلام چیه؟ هموز ما اسلام را مخلوط می با یه مسائل دیگر مکتبهای دیگر یه مقداری از تمونید یا از سرمایه داری یا از این طرف یا از این طرف از سوسیالیست نه برادر خوهر هر زندان ما اسلام نه کمونیست نه کافیتالیسمه نه سوسیالیسم اسلام اسلام خودش اسلامه در همه ی اشتباه اشتراح میکنه ای که به هم میشت کنن خیال میکنن اسلامه اسلام اسلامه. اسلام اسلام مستهش اسلام پوهی اسلام صف اسلام آزادی اسلام اقتصاد و قیر همه ابعاد انسانی و همه ابعاد زندگی اگر این رها را کردید علی اون روز میگوید اگر این صف مسجد را رها کردید مسجد جنده نه مسجد پاته و خب مسجد رسول خدا همون مسجدی که هم صفه جهاد بود هم تعلیم اسلام بود هم تربیت بود هم اقتصاد بود هم محکمه بود هم مرکز رفع اختلافات بود فقط یه چیز نبود مجلس فاتحا نبود همه چیز بود حرکت جنبه فرماندهی به طرف شرق دنیا به طرف غرب دنیا از همون مسجد مدینه برمیخواستن دنیا این رو به تزلزو آورد. از همون مسجد مثل زهره پیدا شد که در مقابل فرمانده کل قبای عرب اسلام به دو جمله نشان داد که ما اینه میخواد نه ما نه مملکت کشایی نه شروک ها هستی. نه میخوایم مردم دنیا رو زیر دست و محکوم عرب کنی ما میخوایم دنیا رجات نجات بدهیم از عبادت بنده ها به عبادت از ذلت عدیان به عزت اسلام این مسجد مسجدی الله الله سیده بیت رد بکن این این ترکتم لند و ناظرین دیگه اعتماعی به شما نمی کنن. همه چیزی درام داره، هر چی شما دارید اونا بیشتر دارد هر چی بخواید اونا بیشتر دارد سلاح بخواید اونا بیشتر دارد اونها بیشتر دارن ولی یه چیز ما داریم اونا ندارن مسجد که هیچی جاسته نمیدن نه کلیسا جای مسجد می تواند بگیرد نه مراکز نظامی دنیا نه مدرسه ها و دانشگاه های فرمی دنیا تا مسجدی که انسان ها رو به دنیا و عالم و رابطه خرق با خدا تحتیل می کجاست این چنین کاری را انجام بده هست. پس اگر مسجد ترک کردید به حسابی به حسابی برای شما نخواهند باد کرد لمت و نازم. والله الله فی الجهاد هیچ جهاد را ترک نکن جهاد به مال به نفس به زبان دائما در حال جهاد بود، در حال انقلاب باشید جهاد با شمشید جهاد به جان دادن و شهادت جهاد با زبان جهاد با دادن مال تی فبیل الله و علاق کم به طواسل و طواسول ببینید همه این وسیعت ها ایجاد محیط چل و محیط پاسم تا اختلاق و استبداد و سلب آزادی پیش نیاید ایجا کم و علیکم بر شما واجب است دائما خیواندها رو محتم کنید همه گروه ها همه افراد و از بود از خودخواهی ها بعضی کنید دبستید گذشت داشته باشید به مالتید اگر به شما هم صدمه توهینی وارد شده در راه خدا تحمل کنید و ایجا کن و تدا و تدا و تقاط دو از این که از هم رو برگردنید همه به هم رو بیارید و دو, دو از این که از هم ببرید همه با هم متصل باشید و لا تترک الامر بالمعروف و نحی عن المنکر هر فرد شما اون قدری که از معروف و منکر اونچه باید بشود و اونچه عقل و وجان و دین شناختست و باید انجام بگیرد و اونچه که به وجان انسان ها عقل انسان های صالح دین اون را ناشنافی می باید همه شما مدخوری هم به معروف کنید و از منفر بازه. در خانه در خیابان در مسجد در مدرسه در دانشگاه این مسئولیت امامی نه ی تبقهای نه یک فشری حتی یک فرد عادی میتواند نسبت به کسی که در رأس مملکت واقع است امر به معروف کند و نه از منثر نه کار شکنی نه اینجا حد برفتن نشان دادن آقا این سوالت این اشتباه باید این راه این کلمه ای که گفتید نادرست بود. همین شما که نشستید صها هدارها گوش سخنان مرا رو گوش میدهید نباید حد قبول کنید چرکرد شما مطبولید به من بگوید اینجا اشتباه کرد اینجا این کلام نابجا جا های صدر اسلام مگر اینطور ندیدند. مگر اون فرد بلند نشد وقتی خلیفه دوم گفت که اگر من منحرف شدم من را راست کنید گفت اگر راست نشدی با این خمسی راست کنید مگر علی نمیگوید دائما به من تذکر بدید خیال نکنید که ما پتدری از تذکر دادن و من بالاترم از شنیدن تذکراتی کنید هم به معروف نهید این از عظیم اسلام که این اسمهای معمولی دموکراسی اینها هیچ نمیتواند یه جامعه, جامعه ای درست کند جامعه که همه باید مسئولیت داشته باشند شما خیال میکنید مثل دموکراسی های دنیا همینقدر یه حزبی یه جمعیتی حالا یا با پول یا با یا با تبلیغات که اسم یه وکیل یا رئیس جمهوری را میگن با میرن دنبال کارو تو مسترمونه نبایدیم تو بردیم. اگر یه دیگه را انتخاب کردید به مجلس خبرگان خیال نکنید این رفع مسئولیت کنید اگر یه دیگه را انتخاب کردید برای مجلس شهر خیال نکنید مسئولیت از شما رفت کنید و فرد شما مسئولید باید به تمام شعور و چشم و گوشتون مراقب اعمال اینها بسن همرم معروف و نحی از اون این جامعه آزاده این جامعه ایست که رشد افراد ناداد و ناصالح در این جامعه از بین خواهد رفت علیم همینه میگوید بعد میفرماید که اگر تر تردی یوبالله علیکم شرارو کن پس کری مردم در شمال این مسئولیت اجتماعیه وقتی کنار بزاردی خواه نخواه جامعه بیمسئولیت همونطوری که آریا اشاره پر بوده در بین جامعه بیمسئولیت شرا علی بیاد چرا قرآن میگوید علد دلخصاب یعنی مستده یعنی کسی که محکوم شهوت و خطاهی و قرارز پست و خواه و عقده های روحی و نفسی خودی. و الله یو الله علیکم شراركم، و کن امت از اونو بخیر بنسیمید تو مساجد ختم اما یو من یادم هست همون هایی که پله شدن برای این که رضا خانده بر مردم مسلط کرده وقتی مسلط کرد او وقتیانا دوسته و مساجد میلیستن ختم اما میگرفتند، جید که خدا را شر رگیر از سر ما ولی هیجا مستجاب ندید. قد نشید در وزانی که اشراع، اوگاهش متلط شدند و سوده های مردم مظلوم مسلمان حیده ها کنید. قلاع های مستجابوند این همه دعا کردید مستجاب نشد اون وقتی که قیام کردید. دیرته برکردید. مشت دره کردید. قیامونها و پشتبانها پشت پر از فریاد شد. در مقابل منکر، جرثومه منکر یعنی دربار، یعنی حلت حاکمه، دیدی چطور ذائلش کردی؟ خیلی با دامن توانش ذائل کردی. اگر امر به معروف و نهی از منکر فرخردی، دووال علیکم قرار و قبض. اشرار بر شما مثلث خواهند شد. هر چه دعا کنید، مستجاب نید. این وسیعتهای علی، درست توجه می فرمایید. این محیطی که قرآن می محیط سلم، خود خلوص سلم خواست. با این برنامه ها، با این روابط روحی و عملی اونخ محیطی می شود آزاد، مردمی آزاد. اول باید خودمون انقلابی باشیم تا انقلاب ما پیچ برود مردمی انقلابی شد یه حرکتی شد ولی هنوز انقلابی نشد ان الله لا یغیر ما ان حتی غر ما باعتن. دید ما حرکت ما زبان ما منطق ما شناخت ما از دین از مسئولیتها باید همه وض تا همه چیز ما برد از اینجا به بعد توسیهی به پرزندان و ستان و اولاد عبدالمطلب این هم سمیدنی تمام پرزندان عبدالمطلب و بنی هاشم اطراف بستر علی هستند. به خود نیستن فاجعه ای بزرگ بود. علی از دنیا برود و اینها ساکت دلشونند همه کسانی که در این جنایت و فاجعه دست داشتند باید حساب فرد فرد که نبود علی امیرالمؤمنین فاجعه عثمان به در نظر دارد که خون عثمان چه پاجئه ایجاد کرد و چجور معابیه که خودش محرک کشتن عثمان بود به وسیله عواملش مثل مروان سپر انگوست های دو زن عثمان که در خانه اش به انقلابی یو شد و پیراهن خونالی به سرخه به و اون پاجئه بزرگ و اون انهراف و اون نامه فرمی تا اینجا سری مناظر می‌بیند هر می به طرف بنی هاشم و فرزندان عبدالمطلب یا بنی عبدال عبد عبدالمطلب هاي فرزندان عبدالمطلب لا الفینکم تخوزون دفاع دما المسلمین فوجا ما بادا بعد از من در دنیا رفتم خون مسلمان ها رو بگی. و شعار بدهید که قد قتل المؤمنین المومنی چون علی کشته شده تمام خوارجی باید نابید کنید اقوامل اونها کسانی که با اونها بودند نه کلیخان نکنید یک نفر مره کنید الا لایقتل لایقتلن لا و بی الا قاتل فقط قاتل مره بسکنید اون دور از انا و تو. به ضربت هی حاجهی پذلوی ضربت اگر با همین ضربت با همین ضربت هر مرادی من خود پسودم خواستید اصاب کنید شما یک ضربه دویده کن. کنید به ضربت هی یعنی ممکن من مدتی زنده بمانم و در یه آرزه دیگری که قیامت این ضربت هست کشته بکنم نه حق نده با این ضربت اگر کشته شدم میتوانید گیره حق شماس قساد با یک ضربت تو توماس جلوب رجوع مبادا بزنش رو مصله کنیم این نماینده رحمت خدا این به جان آوی انسان مبادا دست پاسه بگرم خیلی سمعت رسول الله یکون ای جا کنگل مطلح بپرهید از مطلح کردن که ده به جای مطلح که جاهلیت رژیم ثابت بعد از کشتن بدنها رو می سجاند. از بین می بردن. و بعضی از گروه ها هم همی کن امیرال مومنی می فرما دیگه بعد از کشتن کاری رو بدنش نبسید رسول خدا فرمود حتی سگ سج گیرنده را هم مطلب نکنید این عبقه در جمله دیگر بپرناید اگر من ماندم فعنه ولی جدم ولی خون خودم خودم هستم فعن افنه الفنا و میادی اگر از دنیا رفتم و پانی شدم میعاد من فنا فنای در حق دست بودون از همه تحجینات آزاد شدم از همه بندها رئیز رئیدن منه من وعدگاه من با خدا همین است، این عفو فل عفو قربخ ولکم حسنه اگر عف کردی یا عف کردم مجرید از این قاتل من اگر عفت کردید برای من غربت به خدا برای شما حسنه حفید است حف بکنید خدشت بکنید سلاح توه بونن الله چون میخواید خدا شما رو بردید شام از این قاتل من سر نظر کنید والله ما فاجعن من الموت وارد سره تو. شما خیال می من از اینکه مرگ به سراغم آمده برای من مصیبتی فاجعه ایم. مرگ برای من فاجعه ایست سمیتی از اندیزه های قصاص برای همین است که که فردی کشته شده گردو و رنگ دیده از دنیا رفته از این جهت بران تشفی نفس کسانش از قاتل قساط میکنن علی میفرموید نه من از مرگ رنجی نبردم رنجی نمیبرم شما برای تشفی قاتل مرگ نکنید شرایی که من از این مرگی که به سراغ من آمد ما پاجعن من المان واردون چیزی نبود که من از آن چراحت داشته باشم یا خوشاین باشد برای من بلا حال اون انسرکو مسئله جدیدی نبود که برای من یا خلاف باشد چی میتواند این روز پخم بگوید این یقید این دین این آقابت اندیشی این بقا دینی که همش بقا مرد برای من مسئله ایم. چیز تازهی نبوده ناشناس نبوده پس به چه صورتی؟ و ما کن تو سلال تقار بن ورد و طالب بن وجد مرد برای من مانند سبروی کشنه در میان بیابانها این سبروی کشنه وقتی به شرکشه آبی درست همون که فرمود پسک دو برست این سال بن مثل تشنه شبروی که در سر وارد بشود و طالب بن و مثل کسی که سالها گویای یک همچه تهولی بوده حالا به او رسیده پس مرد برای من بسیار زیبا شما از این جهت از قاتل من اگر بتوانید بگذرید فما عند الله خیر للابرار اونچه نزد خداست بهتر است برای میسندیشان و مردان و مردمی که هیجای یک حقیقت بالاتری هستن السلام علیک یا عمیر الممنین السلام علیک یا قاعد الغر المهجرین السلام علیک لو الله فی الله وبركاته پروردگارا خداوند را از همه ما خداوند را ما را